و الحمد <سؤال> لله رب الانمین <سؤال> و الله اللہ و سید رسول اللہ و آله طیبین و طاهرین المعصومین و لا صدای مفهد و عزائی مجمعین اللهم افرنا بود که بحث شد و بازی یه دیگه خلاصه بحث رو چون اون جهاز فنی کاملا واضح بشه خب به صورت خلاصه و کلی بحث رو مصرف بکنیم که جهاز نظر باشن بحثی که بود در اینجا این بود که اگر ما این روز بحث این توریزیم یعنی این روش دخول در بحث در حیقت این صورته. ما اگر دلیل این طور داشتیم من اكل المیته مثلا یک شهادت و نار. یا اهل میته موجب عذاب موجب عذاب الهی است عنوان دلیل این محل کلام دقت بفرمایید اون وقت اگر کسی گوشت رو خورد و عنوان میته و بعد معلوم شد که این میته نبوده بحث اینه که آیا ما اگر باشیم اون دلیل می توانیم حرمت این عمل یا قبح این عمل یک نحی از آنها وجود حقوبت اون او که از رو عکل میته آیا میتونیم این رو اصفات بکنیم یا نه پس منحج دقیق بحث باید این طور باشه روش بحث این از که عنوانی که ما داریم در عنوان محصیت این رویه مثلا کسی که شراب بخوره سهلاق آتش داره کسی که میته بخوره خون بخوره سهلاق آتش داره این نسبتش با ما نحن و چیه؟ با اونجایی که خیال میکنه میتن البته به لحاظ اون نقطه اساسی اقدام شخص و اکلمیته بود و اکلمیته واقع نشد این محل بخی که الان در اصول و بردن عنوان تجربی رو به اینجا دادن که علم باشه لکن از کردیم که این عنوان ها غیر از مورد علم دو مورد دیگر هم میگیدن. یکی اینکه کسی در فکر عتل میته بود مشغول مقدمات شد لاکن بعدها برگشت اون لحظه عل میته برگشت نفرد. پس مقدمات انجام داده مثلا بلند رفت رفته دکان میکره خریده او تو خونه پخته آماده کرده قبل از اینکه بخوره صوب که برگشت بحث سر اینه که آیا به این مقدار اعمالی که انجام داده آیا این همه حرامه این و عقوبت داره یا قبیه بخش دوم که متلبس دو مقدمات شد درکه یک مانع خارجی جلوشه گره فراسون میترم خرید آمد که بخواد بخوره فراسون گربه آمده بوشت بر یک مانع خارجی پیدا شد پس در بحث ما سه صورت اساسی مطرحه که در آخر هم این تثلیص صورت رو میگیم پس فعلا، بحث رو و عنوان مصیت خیالی و غلام اصیان خیالی که همینه اصطلاح تجدیر رو بیشتر در اینجا میگه از شدت در اینجا احتمالاتی که از یک ما در اینجور مسائل فقط همین لسان دلیل نگاه میکنیم من کلل میتلق و نار. خب در اینجا اگر شخص خیال که از اصمی و خرد و نبود این عنوان سر نمیکنه چون لم از کلیل پس هیچی نداره. طبق این تصور هیچ چیزی بر این بار نمیشه نه به لحاظ فعل نه به لحاظ فائل اصلا ما دنبال قبه فعلی و فاعلی هم نیستیم ما دنبال دلیل هستیم که از کردیم با توجه به نظام قانونی این انصره به نظام قانونی است. در نظام قانونی اون که در متن قانون همون اعتبار داره غیر از اون یه اعتبار نداره متن قانون که میشه بخوره خب این میته نکرده متن قانون کسی که میزه بخوره این هم که میزه نخوره پس هیچ ای برای عقوبت وجود نداره به هیچ جهتی از جهات این یک راییست که خب کلن در فرحه اسلامی گفته راه دوم شبیه همینه میگه ما فقط این لسان دلیل رو نگاه میکنیم و اگر تعبدی هم در موردی آمد مثلا تحبا دیگه در این مورد آمده ای که عدلیت دریدیت در باقه خمره که لعنه رسول الله یا لعنه بر خمر و اشرا مثلا این را کم تریا بیشه و وقت این جور ای چون در این جاهایی که قصد تهیه شراب داره ولو با زمان درازی مثلا 3 سال 4 سال طول می کشه پس از روایت اونوالک بفهمیم که قصد محصیت هم کافی است اون وقت تعبی بکنیم از موردش خمره به کل محرم که مثلا ما نحنوی هم مثال میتو دونن. که مثال میتو را هم بگیریم راه هم اون روایت لعنه و عراض قتل صاحبه چون داره که فنا پس بنابراین از موردش هم تعبی بکنیم بگیم قتل و اراضس القتل ادا حد سبا اون وقت این که ظاهر آج روایته تعذیب کنیم بگیم عکل میتر و اراده عکل میتر علا هم دسته با دوم یعنی قائل بشین که خود نس اختزام نمیکنه، اما دو تا روایت که داریم اونا اختزام نمی کن از حالا اگر این درواز قبول کردیم مثلا مثل, مثل تفکرات احل سنت اون نتیجه گیری هاشون میکنه. کنه از, از احل سنت قیاس رو جایز نمی دونست قطعا نه گجوی از نظر من سنتی مورد خمرگی و مورد قتل دیگه شامل میته نمیشه. 3 رو نمیشه. اذه از اهل سنت هم که به اصطلاح در هم مورد قتل قائل شدن اختلاف کردند که آیا این کسی که عاراضل قتل با اون کسی که قتل به فعل دارای عقوبت واحدن که ظاهر حدیث همینطوره. خلقات المصول محصول نا بیدار اصلا حاضر قاتل و ما با ها و اراد قتل صاحبه که ظاهرش اینه که قاتل و من اراد قتل هر روز در ناره و ظاهرش اینه که یک عقوبته نه به یه خب اونجا گفتن در تعدد داره کسی که قاتل از دوتا هم اراد قتل و قتل این که بقدر اراد القتل یکی پس یه مقدار اهل سنت در اینجا اختلاف دارن بین خودشون سر لحاظ تعدد اقاب و عدم تعدد اقاب وحدت اقاب وعدم وحد عدم و تعدی از مورد و عدم تعدی از مورد اما با سه ازده یا قبول نکدن و باید دلعن سلاف خبر و اشرم که شما خیلی سند واضحی نداره اون دواست هم که قابل قبول نیست پس بنابر این این وجه نجیش دوم که باز تفریعاتی داشت مبتنی است و این که غیر از عنوانه، اكل که موجه به آتشه عیررت ای این ما ببین در تبد شرکه چه آمده؟ و در این نیاز هستم س می هاست کنیم اصلا به وارد ق رو از کتاب بخاری نقله کردن ساد بیشتر متعرض این بحث شدن این تا اینجا دو احتمال احتمال سوم احتمال است که میاد تفسیر میکنه تکل میت به آتشه میگه مراد از اکل میت خصوص این عنوان نیست مراد از اکل میت یعنی اصیان خانون تمرد بر نظام یا به تحبیر خودشون ظلم بر مولا هست که حرمت مولا نه اینکه که مراد خصوص اکل میته باشه این نیست بین بی تغییر هست لیکن مراد جدی اونه حالا یه تقریب مرگوم ناینی داره که مثلا علم تاثیر تمام داره یه تقریب غیر از اون هست با اون که بگیم حقیقت کیفر مترکت میشه بر حالات فائل مصادفه و ادر مصادفه با, با با واقع اون تأثیر نداره مثلا کیفر ناظر به حیثیت فائله یعنی کیفری که قرار داده میشه رابطه فائل با فعله نه به خاطر شور بخمره نه به خاطر خود فیلشی نفسه به خاطر اقدام فائل بر شر بخن. اقدام فائل بر اصله ما در محسیت و در کیفر تفسیر ما از کیفر اینه که کی کیفر اینو تجسم باطنی خود فائله ولی دو فرقه نمی کنه خیال کرد میدونستی یقین یعنی داشت به این میت که میتن نبود یا واقعاً میته بود این نکتهش مهم نیست لذا بنابر این وضع اینم وجه سوم کلا چه اراده عقل میته بکنه و واقع بشه و چه خود عقل میته باشه کلا استحقاق عقوبت داره و عقوبت اصولاً تجلی اون فعل فاعل فعل واعلل نمیشه اینم این رئیسی لازمه که قایو اینها آمده پس این رعی تجری هم موجه به استحقاق و عقوبته مثل محضیت واقعی این هم رعی سلم رعی چهارون آمده بگه نه اونی که از لسان دلیل خود و عنوان عقل میترد اما قصد او و علم او اون بگه تو لسان دلیل نیست اگر میخواییم اون قصد رو به اصطلاح حکمش رو در بیاریم باش به زمینه حکم عقل استفاده بکنیم این سقوم یعنی قول سوم چرا اما قول اول دوم دو تعبدی بود در قول سوم یک نوع تصرف در انسان دری بود به خاطر اکتفاظات اوغلایی در باب کیفیت و دلیل شما رو نه اون معیار او عقوبتشور به خمره نه اون قفه فاعلی نه سو سریعه هم نه ظلم علال مولا و غلال لیکن حکم عقل هم در اینجا داریم در این چهارمی اقوال این معاصلین ما بیشتر رو این مصبه مرموان نایم آتیه شیخ انصاری بیشتر این اقوالی که از شیخ انصاری به بعد رو این فرده که ما یک دلیل داریم عقل می که اونجه به آتشه اونجه به عذابه مانه نقیه هم میتنیست یقین داشته میتنست اما میتنه بود حکم این صورت رو باید هر که در باب افاعت و اسیان در بیاریم نه از لسان تبود لسان تبود میتنست وقت در این که کسایی که شدن از زمان شیخ و بعد این مسئله بین اعلام راه شده مشهورشون هم تون رو که پاید نه که قاعدن به مشکورشون فروزی و احتمالاتی رو بیان کرده یعنی نتایج مختلفی گرفته شده من هم از این رو روی کار کلا یعنی تقسیم کلی کار روی دو فرض میشه یکی قبح فعلی یعنی این خوردن گوشت مزکا این بوش خوردن گوشت حلال به عنوان اینکه می روی این قبح فعلی فکر شده یکی هم رو قبعه فائلی این دوتا یعنی به حکم عقل بررسی شده اما در فعلیش هم عرض شد که دو وجه هست، یک وجه این که خود این عمل ذاتاً حرام میشه همین که شما فهست کردین که میکو بخورین خوردن این گوشت حلال حرام میشه این یک وجه با اگر حرام شد عقوقات هم دنبادش داره. یعنی طبعه که میگن چون دقیقا نزیبیم قائل قائل به عقوبت آخر دو احتمال میشه یک عقوبت باشه دو نباشه این یک احتمال احتمال دوم این فعل که بو خوردن گوشت حلال باشه فی نفسه حرام نیست و که به عنوان این که حسله به تجریح حقیه، قبر داره فی نفسه قبیه نیست بین این عنوان حسن به این عنوان آرزی. یعنی اون صفت فاعل میاد روی این اثر میکنه این فعل قبیه میشه در اینجا دو قوله یک قول مثل مرموم استاد میان بله این فعل قبیح اما عقوبت نداره مستلزم عقوبت نیست یه قولم این که قبیه هست مستلزم عقوبت نیست این دو تا قول در تو اینجا به لحاظ قبله فعلی صورت دوگمش در مقابل قبح فعلی قبح فاعلی من لامیه تمام اقواز رو خدمت عرضم در قبح فاعلی باز هم دو احتمال میاد یکی این که این قبح فاعلی داره اما این قبح فاعلی مستلزم عمومیت نیست فقط یک مذمت فاعلی داره این رأی شیخ رضوان الله تعالی رأی دیگه اینیشه نه این قبح فاعلی عقوبت هم داره به خاطر ظلم برمولا بودن عقوبت هم داره ما توضیح دادیم که رجه این دو قبح بیشتر این جهته که جهت قبح محصیت رو به عنوان ظلمان علال مولا حساب بکنیم یا ظلمان علال عبد حساب بکنیم این که مرمون استاد می فرمائند که مسلّم چون ظلمون المولا محل کلام فراموش که نشد بحث اینه کسی که میت بخوره استحقاق آتش داره از این عبارت به زمینه حکم عقل این جور بفهمید کسی که مزکا و حلال بخوره با عنوان میته این هم استحقاق آتش داره به لحاظ سوء سریره. این سوال اینه یعنی موجود در دست ما عدلی موجود ما یک دلیل لحظی کسی که میته با این حکم عقل بقول آلام از مجمع اونها چی فهمیده میشه؟ یک, دفعه، یک دلیل میاد کسی که مثلا میته خورد به این عنوان چین داره خب اون تعبد الان تعبد ما رو عنوان اکل میته است. در واقع هم اکل حلاله لیکن یقین یعنی داشته من می کرد خود قطعه کنیم مهماستا می که اینجا خوب به داره چون ظلم علال مولا و ظلم علال مولا به نفس استحقاق و حقوبت داره این خلاصه نظر ایشان پس این مجموعه اقوال در مسئله شو از اون قول اول چیزی این نوع چیزی رو قبول نمیکنه کنه مسئله یه حکم لحظی و اون مرداری که لحظ مجموعه اقوال به احتمالات مسئله این شد تا اینجا 67 تا 80 قول شد اضافه بر این باز یک تفصیل دیگری تو این مسئله هست در کل این سلح چون مثلا 8 صورت شد 8 حکم شد باز این رو زرزر 3 بکنیم یعنی احتمالات چرا؟ چون رو ارز عنوان تجریذ یا قصد معصیت یا اراده قصد در اراده فکری صادره این سه جور واقع میشه یک علم انسان به اینکه این, این میته است و انجام بده و نباشه دو اصل عقل میته بکنه و تلبس به مقدمات پیدا بکنه واسه خودش برگرده سه قصد عقل میته بکنه تلبس به که مانع خارجی مانعش بشه تمام اون وجودی رو که برای عنوان معصیت خیالی گفتیم تمام اون وجود در این دوتا هم از وقتی این بحث شده که آیا اون وجود رفتی به باب تشریح دارن یا نه یک بحث شده یعنی اون دو صورت دیگه ما از که در کلمات اصدادم گذاشت از که انصافاً هر سرزی بابن هیچ را ما اما از الان ظاهرشون می که فرق روزه بسید مرمون ایشون میگه در اونجایی که تلباس مقدمات پیدا که و وقت مانع خارجی پیدا شد اونجا قائل به عقبت رشید به خلاف جایی که معصیت خیالی باشه الان مافض تقریق مرمون آزیان بیشون اشاره کرده که فرق حق با بازی آسان زمان فرق نمی کنه وجود مانع خارجی و از مانع خارجی. در این نقطه تأثیر نذاره نقطه چیه؟ نقطه عباده از دلیل ما این بوده خود روایات مثلا جمع در این روایت بحث دیگه اون دلیل لفظی میشه دلیل ما این بوده اکل میده موجب عذاب عذابه این دلیل ما یک حکم عقل دقت کردیم حکم عقل بهش اضافه بکنیم بگیم در بکنه عرض فرق بین محصیت خیالی با اونجایی که مقدمات انجام بده لکن مانع خارجی پیدا بشه عرض ظاهران فرقی نمیبینه این که معفق بشه یا نشه مقدمات رو انجام بده یا نده هیچ شرقی در این جهت نمی کنه. این راجع به این قسم و اما اون نظر نهایی من از کردم که به لحاظ ظاهر دلیل اکل میکه موجبین این سهراغه قابل اون تصرفی که مراد تمرز باشه این خلاف ظاهر دلیل, دلیل خارجی میکنه. و اما این که قبه فعیلی فعیل داشه حالا فیزاته یا با عنوان به عنوان حسله به تجربی انصافا این هم روشن نیست اصولا قبه فاعلی قابل سریان به فعل نیست و نکش. اینه در اونجایی که معصیت خیالیه چون دیگه محبایم جمع کنیم بخش اونجایی که معصیت خیالیه اصولاً علم انسان که خلاف واقع باشه علم و جه، جزء جهاز مقبهه نیستن همچون که نایمی فرمید استاد می هستن نه نیستن جزء جهاز مقبهه حساب نمیشن و اما اونجایی که اشتغال به مقدمات داره و نمیرسه به زیر مقدمه این بحثش گذشت در بحث مقدمه واجب و در خلال بحثا هم به اشاره شد. بحث کردیم ظواهر عبارات اصولی این است که مقدمه واجب مثلا واجب به فرض مثلا واجبی است. مرحوم صاحب اصول این بحث مخرج است که بحث مقدمه واجب در مقدمه, مقدمه موصله است. در مقدمه موصله باید بحث بکنیم آیا مقدمه یا نه اما مقدمه که موصل نبود وقتی که وجود بشه خلاصه نظر صاحب و حتماً شما در ضمنش در کفایه اشکال کرد چون قبول نمیکنه میگه قال بوجود مشه مطلق مقدم و ما در محل خودش بحث کردیم و از استاد موافق با فصول کردن و حقم با همین بزرگواران اصولاً بحث مقدمه مرادشون باید مقدمه موسیله باشه حالا به تعبیر اون این حسی از مقدمه اصل چون نکته عقلی که برای عنوان مقدمه یعنی نقطه‌ای که حالا وجوب یا یا مثلا چیزی شدیه اثبات بکنم برای مقدمه اون نقطه عقلیش ترد به اون حرام یا واجه بپرش یعنی به عبارت دیگر من سابقه قدر از کردم در بحث مقدمه خود دقیق خود فعل به ماقوه فعل عنوان پیدا نمی کنه. یعنی خود فعل به ماقوه عنوان وجوب نمیشه متعلق وجوب نمیشه. اگر برو گوش بخر، رفتن بازار رقصن خیابان لباس پوشیدن سوار ماشین شدن اینها به عنوان واجب نمیشن. بکنه. نه این که رن بازار واجب میشه. اونی که واجب میشه معز که م... م... کله عنوان مایوج شرع الله حالا میخواد بازار رفتن باشه، تلفن بکنه بیاره به کسی بگیر بره بخره. اصلا عنوان فعل وجود پیدا نمیکنه. و لذا از کمی بعید نیست که مثلا اده از علمای احفه سند و بعض هم علمای شیعه مثلا در جایی که انسان عملش مقدمه فعل حرام از دیگری خودی خود کنید. اون جایی که عمل انسان قرار میگیره در فلتری تولی برای صدور حرام از دیگری اسمش و اعانه حلل الحکم اسمش اینه بعید نیست که این دو بر برای همین فرغا گذاشتن البته بحث مقدمه واجبی یا مقدمه حرام در فعل خود انسان بحث اعانه در فعل دیگری در فعل خود انسان ممکن است از این زاویه هم فر بکنه و اون زاویه این باشه که در باب مقدمه خود و عنوان واجب یا حرام نمیشه خود دقت کنید اما در باب اعانه خود اون عنوان واجب یا حرام خود اون عنوان حرام میشه یا حالا واجب یا مستحب میشه مستهدتر میشه مثلا در باب مقدمه فعل خود من برای اینکه شراب بخورم با مثال الله بلندشم سوار ماشین بشن برم تا پروشلو های شراف روشی برست رو بسته باشه خراب ای در اینجا این فعل من که سوار ماشین شدن بود این مستثف به غرمت نمیشه اونی که حرامه مقدمات شرب خمر منه شرب واقع نمیشه به خلاف اینکه شما انگور رو به کارکانه شراب بستوشید خب دقت بکنید اگر شما انگور رو به کارخانه شراب فروختید این خیلی نکطه لطیفی اگر تمام بشه نکته در اونجا عنوانی که هست خودی این عنوان فروش انگور به کارخانه شراب حالا میخواد بدونیم که همین انگور رو شراب میکنه احتمال همین انگور رو انگور میفروشه احتمالم هم شون انگور بفروشه اس هم نکنه بیایین بین عنوان اعانه بر عسم روشن شد که مربوط به دیگری حالا یک این ذرافت داره فکرش بکنیم قدیمی های دیگر مصد شد میشه این عنوان رو ملتزم شد این نکته ای فرنی رو ما در بحث مقدمه حرام خود اونو فعل حرام نمیشه ممکن این عنوان مستقل داشته باشه خود اونو اون ممکنه حالا فعلا نظر داریم که خودش اونوان مستقل داره با اونوان مقدمه من سوار ماشین شدم که برم شراب بخرم خریدم و شراب رو آوردم توبه کردم تو راه بیردن این شر... سوار ماشین شدن به عنوان حرام نمیشه خوب گفت بکنم را این شخص سالس اینشو رو در ما بازه این شخص ببوری داریشون سوار رو ببرید اون شخص برای خودش عنوانه آنه برای اصداره حرامه میخواد این شراب بکنم مثل فروش انگوز به کارخانه شراب بین لو شد متصدی فهمی، ببین این دوتا تا فرق بگذاریم. فروش انگور به کارخانه شراب حرامه. نمی‌خواد علم داشته باشون که فل شراب تگر انگور یا نه، دقت کنید. اما تفهیم سب... خیلی لطیفه، ظریفه. البته آیان بحث مقدمه حرام رو توی اصول آورده، بحث آیان بر اسمو یا در ته آوردن اخیرا هم علمای ما توی قواعد فرق آورده. خیلی از این نقطه فنی در تنظیم مسئله عیمیشم ترگذاشتن مقدمه حرام تو اصول بحث آآنه الاسم یا در فقه آوردن یا به صورت مصطوفا توی قوائد تو اصول نی آوردن نه زرافت روشن شد بس. این خیلی زرافت داره که آیاستان این مسئله افرن واقع شده یا روی انایت واقع شده پس بحث مقدمه واجب یا مقدمه حرام میخوام خب بگم این البته اولش این طور بحث مقدمه حرام من فعل خود انسانه اعانه بر اسمال فعل دیگری اعانه بر اسم یعنی انسان مکلت در سلسله طولی واقع بشه که گناهی از ذی صدر میشه در اون سلسله مثلا انگور بین آقا ببینید فروش انگور انگور بین کارخانه شراب میفروشه تبدیل به شراب بود این در سلسله واقع شده این رو میگن اعانه علل اسم ماخطر بشه دیدی شو نظرشون این بوده که عنوان که آمد مهم نیست اسم ماخطر بشه این ذرافتی داره ببین این ذرافت میشه حلش بکنی حرام در اینجا آیه این مطلب درست اولا اخری به لحاظ تنظیم علمی بحث مقدمه حرام رو توی اصول آوردهند بحث آهانه بر اسم رو در فقه رو و بعد مصطوفا در قوائد فقه الان در قوائد اینجور مهمون اصلاحات بجنازی بحث رو بار مثل آهانه سهل اسم اونجا رو تو بحثایی تو اصول نگه بردن مثلا در فقه در مقاسب محرمه به این آل اینب لمنی اصلا اخو خمرا به این ارمان رو بردن بفتن آهانه سنیا رو بردن اصلا اصلا این بحث در قدیم اولین بار اهل مطرح شد. تدریجان تو مسادر ما آمد تدریجن تو مسادر ما با عنوان حرمت لعانت علال اسم دیکل شد البته در مسادر ما اصحاب متأخر ما مثل مرحوم جامال مقاسه توی این بحث زیادی کردن و مرحوم اردویی یما شاش زیاد شد تا آقابتون اند به که مثل صاحب جواهد این ها اصلا مثل آدخوی حرمتی آنه بر اسم قبول نکردند. مثلا قبول نکرد اعانه بر اسم حرامه به قول خودشون تعاون بر اسم حرامه نه اعانه بر اسم تعاونم یعنی 5 نفر 6 نفر با هم جمع بشن یک حرام واحد انجام بزن اما من مقدمات حرام دیگری بشم اسمی بشن اعانه بر اسم مثلا پنی نفر شیش نفر, نفر بزنن تا بمیده این تعاونه بر اسمه اما من چاهو بدم بین بی آقا این آقا با چاهو که رو بکشه این اعانه بر اسمه اگر فعل من در سلسله طولی واقعی شد اعانه بر اسمه در عرض هم واقعی شد اسمه. این فرق بین این دو سال بحثی که الان در اینجا هست اینه که آیا ما چه سری داره هم در تدوین علمیش این دو تا فرق بذاشته و آیا غیر از اون جهت هست که مقدمه حرام مربوط به فعل نفسی این آزاد خادش شده که خیلی ظریفه من همه این رو عرض می کنم که فکر میکنم چون خیلی ظریفه می خواهم جل بیاییم هر قاهل بشیم بگیم در مقدمه حرام ت... مقدمه مونسله حرامه اگر مونسل نشود حرام نیست من سوار ماشین شدم برم نستجل و شراب بخرم دکان شراب فروشی بسته بود یا خراب شده بود عملا شراب نخریدم این سوار ماشین شدن حرام نیست این سوار ماشین شدن حرام نیست عقوبتم هم نداره چرا؟ چون موسل نبود اما اگر من انگور رو فروختم به دکان به کارخانه شراب بروشی فروش انگور به کارخانه شراب حرامه میخواد اون انگور رو به حال فرس این انگور رو شراب بکنه کسی آمد شب مغازش دو دیدن برد انگران دو دیدن. یعنی این فروش من موسل نبود خوب فروش من موسل برای فعل غیر نبود به فعل اسم در خارج محقق نشد آیا این فروش من هنوز هم حرامه یا نه سؤالون زواهر عبارتشون اینه که اصلا خود فروش حرامه ها همین زرا... اگه فرض رو که در یک بابیو بیده. ببینی این چرا این کار آیا واقعا این ذرافت هست در فرق که ما بین این دوتا رو فرض بگذاریم از بس داره, دلیم. داره؟ نه, روایت داره؟ نه روایت داره؟ چرا روایتی که هست در اونجا نه بیال خمز داره بایی آها فروشنده خودخم امتن. نه اینم الان برسره فروش انگوره اون لحن اللاق الخم عشره بایی آها ها و مشتری اون مال خودخم هم خیلی روچی خودخم ره میگن تا آغان صدر نمیکنه. میگن اعان حرام نیست این دار بر زل آقایی توی عروری شنید گردی از بزرگان برساب جواهه که اعانه بر اسم حرام نیست اعانه بر ظلم حرام معونت و ظالم حرام بلکه اگر خوب دقت بکنیم اصلا معونت و ظالم مهم نیست همین که ایسان در در سوال سلطنت و خلافت با مثلا خلافت از آسف بنشینه ولو هیچ کمکی هم نکنه اصلا اون صد و دلق هم سواده اون خود اون حرام نظر شما که اعانه و ظالم فرمی نمی جدون ترمی آبا این نکته تمام روشن شد مثلا این نکته آیا خوبی میفرمدن این فعل قبیه سوال اینه ما رو این نکته بودیم آیا خوبی میفرمد این فعل قبیه چون با این فعل تجربیه و عنوانی که تجربه مضوعی نایین که این عنوان موجب قوه قبه نمیشه ما الان میخوایم اینو چون بحثش بزرشیم مخاطب رو جمع بکنند. آیا موجب قوه میشه نیشه یا نمیشه از کردیم مورد تجربیه سه تا در داره. یکی علم من به که این مثلا اکلی میترد علم این میترد ما ارز کردیم هر با مرمومنهای نیست علم و جهر جهاد جهات نیستن یا محسنه علم کاری را این جهر می مثل انقاض مثلا نبی باشه که انسان دروغ بگیه یا انقاض مؤمن باشه از اون قبیل نیست که جهات محسن. ما هستن و اما دو موردش مقدمات حرام را انجام بده اما خود حرام رو انجام نده یا اختیارا شراب را هم نخورد ریخ شراب رو یا غیر اختیار هر ما اینه که در اینجا باز هم موجب به حرمت نمیشه چرا؟ یعنی موجب به قبه نمیشه چون قبه فیل در جاییست که مقدمه موسله باشه اینجا مقدمه موسله اگه قبولم بکنیم مرد کلام هست حرمت هست. مقدمه وجود مقدمه قبول هم کنی در جایی که مقدمه موسله باشه در ما نهنافی نیست پس بنابراین در اینجا ما با استاد اختلاف داریم ایشون قبیل میدونه فعل رو لکن به عنوان ما حتیل تجربی ما نه ذاته فعل رو قبیل میدونیم پس اون رو باید لعکل میتونه اینم گوشت حلال کن خیال میگنه میتونه اصلا میتونه پس این بحث هسته میشهالله سآله رو شد در قوانین مولود به شریعت ترور که از به خاطر اینکه حکم من قتل رئیس جمهور نداره باقیم میموه یک اگرم باشه به عقوبت خاص خودش پس بنابراین حق این است که فعل قبیح نیست نه به ذاته نیست و عنوان ما حسن به تجری دوتا و به لحاظ فائلی انساطن حکم این عقل به اینکه که سوء بده این جای بحث نیست اما این غیر از مذمت و اغلائی. چیزی بیشتر نداره این خلاصه بحث ما در تجرید از هیچ نه به عقوبتی در اینجا بار نیست نه به لحاظ فعلی و نه به لحاظ فاعلی و صور تجربی هم با همدیگه فرقی نمی کنن. چه در محصف خیالی چه در مقدمات چه خودش اختیاران انجام نده چه مانع غیر اختیاری دید چیزی نداره خودش عنوان من من اکرازمیت هستیم مخلوض کلام ما نه اونو نه. اکلمیته اکرازمیت هستیم که در اکرازمیت برای نکنمیش که انجام نمیم بحث دیگری رو مرحوم و اصال مفرح کردن در بحث پجاره که طولانی کنیم که این کنیم کنیم نکته زریفی بازم آقای من یابشه نبودم خیلی فکر بکنن آیا میشه بین مقدمه بحث مقدمه حرام با آنه بر اسم این فرور قائل شد که در بحث مقدمه حرام مقدمه مونسله حرامه اما در بحث آنه بر اسم عنوان حرامه این گزه ها رو می شه شد و چرا آقایان یکی رو تو اصول و... چرا بحث آنه برای اسم تو اصول نه بردن آنه به اسم قدمه حرام رو تو اصول آورده، اما آنه برای اسم نه چه نفتی فنی و ذرافتی در تنظیم علم وجود داشته در ذهنیت آقایان که یکی رو در اصول او یکی رو در فقه او یا قواعد فقه او یه بحث دیگر این مرمومه در اینجا بله متعرض شدن در خره 54 از همین گرد چه تا صفحه 57 راژت به وجودوب موافقت بله الارتظام میه بله ثال سر شده. اون بحثی که از وجوب موافقت التزامی در بحث، این بحث خیلی به بحث نمیخوره. تا حدی چون واضح بوده، منظور آدیا معلوم نهایی، اصلا بحث نداره این بحث موافقت التزامی ها. مراد از موافقت التزامی هر چیکی چون فرضاً مراد اعتقاد به شریعت نیست، اصول هستن یا است، اون که بحث خارج. مرادشون چیه؟ اصلا اولا چون به قول معروف اون سمره گفته بشه که ایشون دارن بحث از ثمره ایشون دو تا سمره برش فرمودن فرمودن ترد هر سمره در اطراف علم اجمالی فی ما اضافتان اطراف محکومتن به تکلیف احضامی فعلم اجمالن در ارتفاعی فی به اطراف این مطلبی من توضیح بدم که روشن بشه که مراد ایشان و مراد آقایان چی ببینید تا حالا شیندی که آیا علم اجمالی منجز هست نیست علم تفسیلی یا خب دو کلی هست یه اینکه که علم اجمالی مثل شبهه بردیتیج فرق میکنه ولذا در جمعی اطلاع علم اجمالی اصول ترشیسی جاری میشه از هم از اصولی این قائل به این مبنا داریم هم از اخباریین قائل به این مبنا داریم من جمله مرموم مجلسی در عربعینش شخصی میکنه اگر ما میدونیم ای از این دو طرف نجس شده قطره خونی افتاده و تشخیص نمیدیم اساس و در هر دوی اساس در هر دو میشه ایشون به اصول سرخیصی رو در اطراف یک رایی رای که نه در یک طرف اشکال نذاره یکی رو میشه خورد یکی دیگه شه نه این رو اینه حلال تربودی یه رایی خب ای رای هم که هر دو طرف باید ترک. حالا در این سه هم چند تا رایی و چند تا مبنا هست این خوب دقیق بکنید یه بحثی که بین آیون شده آیا این بحث تنجیز علم اجمالی فقط در است که اصول ترخیصی محل کلام باشه مثلا دو تا اینا هر دو, دو تا زرد هر دو پاک بودن یه قفل خون در احده ما افتاد این مسلمه در اینجا این علم اجمالی ما مانع از استثابت ها رده بگیم این هم طالب اونم طالب طالب بود خالا هم این مانع. درست در صورت اصلی اینه اگر باشد و اصلی که جاری میشه اصل ترخیصی نیست اصل, فیما اصل الزامی است این مرازیشان فی ما از آکانه ال اکتفا این بررسیشام مرازیشان اینه این بحثی که در اصول مطرح شده اگر اصل جاری الزامی باشه نه ترخیصی آیا باز هم در حساب علم اجمالی جاری نمیشه مثلا هر دو اینا نجس بوده. باشن شد دیدین مثلا یا آب کری یا شیر آبی یا بارانی روی یکی ریخ یکی پاک شده اما تشکیز نمیدیم گفتم در اینجا اجرای استثماب اینم سابقه نجس بود نجس. اون می نجس بود چون اصول الزامیه در اینجا بقا نجاسته نه تهاره اون تهاره ترکیزی بود علم اجمالی با اجرا اصول تنقیسی در اطراف منافیه سؤال علم اجرا اجمالی با اجرای اصول الزامی در اساس تو <متحال> نه اینکه روشن شد اجمالی است بعد نمی از عداد تنقیس اجمالی بعدا خب میدونیم حالا هر دو میگن نزدیک تعبدی نمیخواه استثاب نمیخواه تهارت اصفاد بکنیم نجاست اصفاد بکنیم این طور بگیم این انا سابقاً نجاز بود حالا نجاز اون یکی هم سابقا نجاز بود, نجاز بود. لذا این بحث به این اصولی‌ها اصولی ها مفصل در گرفته در این اصول متأخر ما آیا اصول الزامی در اصاف علم اجمالی جاری میشن یا اون بحث خاص است به اصول ترخیصی یعنی استثحاب تهارت در دو طرف نمیشی کرد با علم نجاست اما استثحاب نجاست با علم به تهارت احده ما اشکال نداره هر دو سابقا به اصطلاح چیز بودن نجس بودن مثلا دو تا بوشته. خب اسات عدم تسکیر میدونیم یکیش تسکیر شده بگیم اصلاحات عدم تسکیر چون اصلاح ازامیه چون اجتماع برزانه اصلاحات عدم تسکیر در هر دو جاری باشه. این جور علم اجمالی مجرم نیست پس علم اجمالی همیشه مانع از اجرا اصول نیست اگر اصول الزامی باشه جاری میکن. اصول الزامی اطراف علم اجمالی جاری میشه نقطه ما لا نجازن. نجازن. نجازن. هو ما <تصفيق> لا, ي... لا لا لا به است مانع من اجراء استصحاب نجات ویدیو. ان لان اصول ترکیسی سنافا نافا اما الاصول اصول نکته بیزاییک علی از دست نافا ماله. خلیکن آحده مفصل، لکن نه احنا یعنی یرا انه وجود الالزام فالترشین فالأخراف لا مانم من الالتزام و ولو علم ناجمالم به ترخیص ها در علم الاجمال لا یادو روشنی کنید ها این یک بحث وقت آمدن این بحث رو از کمره موافقت الالتزامی قرار دادن آقای خودی نمو یعنی به عبار از این اصلا اگر گفتیم موافقت الالتزامی لابد من خوب لخش بکنیم شما بیان بگین این هم نجاست اون هم نجاست التزام بدین به نجاست خب یکیش که پاسه با اون نمی سازه. اگر التزام موافقت التزامی واجب باشه اصلها جایی نمیشن اما اگر موافقت التزامی واجب نباشه خب بگید این هم نجاست اون هم نجاست اسدار از این هم اشتماع بکن از هم اشتماع لابون لازم نیست که شما التزام. التزام اگر لازم بود التزام بدین که هر دو نجسن با علم شما به تازه اهل ما لذا ایشون مثال روشن شد پس بحث از وجوب التزام چیه مورد محلوه از این مثالی که دادن ایشون روشن شد مراد از موافقت التزامی غیر از خود اجتناب شما از دو یه دفعه اشتناب شما یه دفعه نه من اشتناب میکنم با عنوانی که نجس خوب ده با عنوان اگر میخواد با عنوان نجد پس علم شما که پاک شده کجا راست با اون نمیسازه فردا سوزیه بیشتر بشه این خود برد این عبارتیشون رو خوندم که مرادیشان روشن بشه پس محل بحث در جریان اصول در اطراف علم اجمالی اگر اصول الزامی باشه نه ترسیم سلام